کتاب فرهنگ افسانه های مردم ایران جلد دوفم نویسندگان علی اشرف درویشیان و رضا خندان محابادی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار های افثان داستانهای ای صوتی به مدیریت محمد جواد بروستانی راوی مریم کیان به نام خدا اسم داستانمون هست پیرمرد آبد قصه پند آموز خاکسترنشینی یکی از کارهایی کارهای است که اشتاق برای ابراز عشق خودشون به مشوق تو برخی از قصه ها انجام میدادند تو این قصه هم خاستگارها چنین کاری میکنند یکی بود یکی نبود. غیر از خدای مهربون هیچکس نبود. پادشاهی بود و دختر بسیار زیبایی به نام شاهزاده خانوم داشت. شاهزاده خانوم خواستگارهای زیادی داشت. یکی از اونها پسر وزیر بود. روزی به دستور شاهزاده خانوم در محوته خاکستر ریختند و خواستگارانش رو روی خاکسترها نشوندند تا وقتی که به شکار میره به اونها نظری بندازه و به اونها جواب بده. از غذا پیرمرد خارکنی که از اونجا میگذشت برای استراحت در کنار خاستگارهای خاکسترنشین نشست شاهزاده خانوم که برای شکار میرفت نگاهی به خاستگارها انداخت و توسمی کرد و بدون اینکه چیزی بگه رد شد وزیر از اون پرسید که آیا کسی پسندیده شاهزاد خانوم گفت اینها به درد من نمیخورند وزیر که پسرش هم تو خاک سرنشین ها بود کینه شاهزاده خانم رو به دل گرفت به طرف خاک سرنشین ها اومد و پیرمرد رو دید با او به صحبت نشست و فهمید که پیرمرد برای رفع خستگی اونجا نشسته به اون گفت دلت میخواهد شوهر شاهزاده خانم بشی پیرمرد گفت او بخواد چرا حاضر نباشم وزیر گفت پس اون چیزی رو که من میگم باید اجرا کنی برو فردا به قصر بیا پیر مرد فردای اون روز به قصر وزیر رفت. وزیر اون رو به کوهی برد و داخل قاری کرد. گفت در این قار مشغول به عبادت شد و از اون بیرون نیا. من دستور میدم هر روز برات آبو نام بیاورند. پیر مرد امر وزیر رو اطاعت کرد و مشغول عبادت شد. چهل روز گذشت. در این مدت رنگ صورت پیرمرد که آفتاب ندیده بود سفید شد. و با لباس ریش سفیدش شبیه یک آبده واقعی شد بعد از چهل روز وزیر اومد به پیرمرد گفت قرار من و پادشاه به دیدن تو بیایم هنگامی که من و اون رو در پایین کوه دیدی مشغول عبادت شد. به نزد تو هم آمدیم اعتنایی نکن و با متانت رفتار کن و حول نشو پیرمرد قبول کرد وزیر به بارگاه سلطان رفت و پادشاه را تشویق کرد تا برای دیدن یکی از آبدانی که شب و روز مشغول دا کردنه مملکت هستش پیش اون بره. روز بعد وزیر و سلطان به رفتند رفتند و پیرمرد رو مشغول نیایش دیدن. سلطان از رفتار و متانت پیرمرد خیلی خوشش آمد. به بارگاه برگشتند و نزد شاهزاد خانوم از پیرمرد خیلی تعریف کردند. سلطان برای دیدن پیرمرد چند بار دیگر به غار رفت تا اینکه به توصیه وزیر پیرمرد رو به قصر آوردند و در اونجا اتاقی بهش دادند دو روز بعد وزیر به سلطان گفت که دخترش را به عقد پیرمرد در بیاره تا اون اونها رو محرم بکنه پادشاه قبول کرد شاهزاده خانم هم که تعریفهای زیادی از پیرمرد شنیده بود دلش نرم شد و حاضر شد به عقد پیرمرد در بیاد وزیر از اینکه که خانم به هجله پیرمرد مرد انداخته و انتقام پسرش را گرفته بود شاد بود. بردای شب عروسی سلطان دید که پیرمرد مرد آبد از اتاق بیرون نیامد. از شهزاد خانم سراغ اون رو گرفت. شاهزاده خانم گفت همان موقعی که ما را دست به دست دادید به فکر فرو رفت. لباس خود را پوشید از اتاق خارج شد و دیگر برنگشت. سلطان وزیر را خواست و سراغ پیرمرد رو از اون گرفت. وزیر گفت شاید به قار رفته باشه. وزیر خودش رو به قار رسون و دید پیرمرد حقیقتا مشغول عبادته. صبر کرد تا پیرمرد عبادتش تموم بشه. به اون گفت این چه کاری بود که کردی؟ پیرمرد گفت من با چهل روز عبادت قلابی به مقام دامادی شاه رسیدم. حالا بیبین اگر چهر روز عبادت واقعی بکنم مقامون من به کجا میرسته. وزیر هرچه اصرار کرد تا پیر مز رو منصرف کنه نتونست و ناراحت و خشمگین از به سنگ خوردن تیرش به بارگاه برگشت. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها عت های زیبا و نایاب رودخانه ها و برکه های جادوی قرهای باشکوه و مهمانی های بزرگ شاهانه بسههایی از سفرهای دور و دراز با پای پیاده،